حکایت وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دلا به کنجی نشست و گریان همی گفت مگر خوردی فراموش کردی که درستی میکنی چه خوش گفت زالی به فرزند خیش چو دیدش پلنگ گفت کنو تن گر از عهد خوردید یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیر زن